الحمد لله يا رب العالمين صلی الله علیہ وسلم رسول الله. و آل قیدین و قادرین و معصومین و زمس يا که بود که اجمالا خواب به حمد به مختلف است. هست بردار عنوان حلق و داره که پیش ما همین روایت دو تا روایت بود هم حلق هم حلق و اللحا این هنامین بود و موشن شد که به لحاظ سردی همه اونها اشتار برن یه ازم روایاتیست به عنوان احفا و که داره و اونم باز به تعبیه مختلفی داره اون این که در روایات که دو مورد آمده اعفا آمده و این به در حاضر سندگی هم اشکال داره که اون شهرت داره روایات اعفا و بین علمای اهل سنت شهرت فراوان داره و از چون که به تحبیر ملمایه بروجیه موکن است که همون شهرت کافیه در روایات ما هم برم نشده اکتفاع به اون شهرت شده این webdriver اصلی سی در مقام یه مقاله رو هم از به ملاحظه خیلی می‌گوی استفاده بکنیم نه به صراحت اما تا از درع احوال به صراحت اونها تەسور کردن و اون عبارت که عنوان داره می‌زنه اخذ ملکیه در درون حدیثی که ما می‌فرمازه از عارضه اخذ بکنه از جلوه یه لهیه اخذ نکن بعضی از نه حلقه نه, نه, حل نه, نه حل اخذ نه نیست خصوصا در واسطه نمی که به درد حضر اللهیه این کراراً عرض کردن دیگه می خواهد توضیح بدن لیکن انشاءالله عرض می تقریب دیگری که این استظهار بشه عرضیش کرد که حضر اللهیه مسلم حرامه به ملازمه دلغرفیه یا, یا به ملازمه یا به نکات دیگه که بعد عرض می کنن این که از این روایات مجموعه روایات احس و یا تخفیف اللهیه استفاده بکنیم احسی خود حد حرام حالا برکه احتمال داره اضافه که هر که حرامه گذاشتن و یا حالا توفیر یا تکریر یا تطریر این اناوین اناوین متعدده است بگیم این اناوین هم اصلا واجبه اضافه بر اون که اون جهت هست این جهت هم وجود داره یعنی در, در کجا جا کجاست؟ این اینکه زیار که, که روایته اندر مناللهی یا معنی حلقه این نیست این مسأله خیلی اوقات معنی ازاظم تحلیل کلمات دوغوینا این نمی‌تونه اشتباه نشه فقط روایته اکثر در ذات حلقه جای بحث نداره اونی که جای بحث داره این است که ما از روایته اخذ استدلال بکنیم به ملازمه یا به نکته دیگری که در کار آمد اثبات بکنیم مسلمن هر فرانه از اینکه فرمان فراندن که اینکه احض جایزه حالا احض یا مصلقا جایزه یا من از جایزه از دلو جایزه نیست حالا اون محض دیگری ما فعلا متعرض به روایات احض شدیم این جهت به الله محلوم هست به روایات در رفتی به روایات حض علیه چدا هم نداره حضون نداریم در حض اونان رو خوندیم از حسن رو خوندی که از که این رو نمیشناسیم، من بیشتر که در بعض نسخ حلاله لحیات است، نه من اشتباه کردم حلاله در مسخ زنک من اون چیزی که دیدم کردم درست نیست. پی این ای که از همه حرف لحیاته. اشکال چیز دیگری بود من حواسم خراب بود. من از کردم میخوام این اشکال این بود البته نه که از کم تو ذهنم بود اما به هم بیان نشد اونی که در به اصطلاح شواهد داریم یعنی در روایاتی که ما داریم نقل نشده مثلا از احدی از عمه یا نفشده از رسولا که حتی ضعیفا حتی که علیه سنت که هفت رهیت بود داره اصد من رهیتی داره یا قصد رهیت بود کوتاه کرد یا جزء این عناوین ما داریم قصد داریم نه ولیدنه هم. جزء همون فکری کرد. به اصطلاح اخزم داری کوتاه کردن روایت اگه ذهن موارکون باشه ماکان من مقدم به اصطلاح ما مقدم منم قبضه تا جزو جزم داشتیم در لحیه اما در لحیه هفت نداشیم ماده هفت اینو در شاره داریم هفت و شوارد یا هفت و شوارد. اددعیم از کردن حفرو و نمی‌که سبیل از بیخ بیخدرد. ما در بحثه... چون بحث شما در سبیل همون وارد می‌کدیم که چهیم بحث می‌زیم. از اهل سونن در همون روایات شارب اختلاف دارن. اغلب ازشام نهارت می‌کنیم. یک پالش این بود که مورد از اون دواجع هست. اصلا سبیل رو دت هر که حلق بکنند. حلق اول از این است که با یک وسیله تیزی کاری بکنید که آن رسمی که از به بشر ارتباع داره کلن بکنه، این نشکل حرق اصطلاح حرق اینه به هیستی که رو بشره اون حالتی که حاله به هست، روی بشره حرق هست. این غیر حرقی اما جز یا قرض اواردن که باید مثل تهی چی مثلا اون رو ببری نه این که صاف صاف صافش صاف رو کنیم ولو این بریدن ممکنه کوتاه باشه یا مثلا ماشین سرک رو به اصطلاق لذا در لغت عربی جلس و قصر و اخ اخ تا این کمیشه ای به هر گفته نمیشه دو مفهومه هم ولو خیلی کوتاه هم دکنه که کاملست هم رویش نبینه و که با ماشین سرک رو باشه بازم حلقه نمیگن سرکه عربیش نمیکنه وقت بعضی ها گفتن هفت قیل حلقه هفت هم اینه که ایسان مثلا اینقدر کوتاه بکنه که دیگه کاملا بشر بیده بشه اما حلق این یک معنی حف و شوارب رو بعضی ها به معنی گرفتن بعضی ها این کوتاه کردن مطلق اما حلق نباشه مثل ماشین سر این دوره بعضیا حف و شوارب رو به معنای کوتاه گرفتن گرفتن از به اهل سنت مثل مالک بعضی هم که به بعد از شافه نسبت داشته به خود شافه هم نصد شد گفته هفت و شوارد یعنی اینکه که این جلو لب رو به کوتاه ببرید نه سبیلتون رو کوتاه کنیم بگفت بکنیم سبیل به حال خودش باشه اون مقدار از سبیل که روی لب آمده این مقدار رو ببریم به حیثی که لب کاملا بیرون بیاد حرف رو منه این گرسه عرض عرض از توی این لغت یه جورهایی هست یعنی یک ابهامهایی داره احتمال داره احتمال داره اصل این لغت به معنای جدا شدن و به معنای واضح شدن و روشن شدن اصل اصلش این بوده هافتتن نهر هم دقیقاً اینه که دیگه از زمین از دریاچ از رودخانه جدا میشه عربا اون کرانه به واژو می克兰ه کرانه رودخانه اونا به حساب رودخانه اونها رو به اطراف میشنگن حافه حافه تو نه این هم, هم این کلمه هست و در روایاتی که ما داریم یا اهل سنت این ماده هست توی شاره کار برده شده توی لحیه کار نبرده شده این تمام کلمه بکنه من یادم رفت دیروز برکی دیروز برک احواستی پرد روکه و بعد تحریف کردن تقریب درستش اینه ما تعدیر حفظه رو در لحیه نداریم خوب دقت کن. هفته رو تو چارم داریم تو سبیر داری. که و اجام هفته من سه منسه حلق گرفتن یا خود حلقه یا یه چیزی که تراشیدنی که شبیه حلقه ما تنها یه روایت ما داریم تو کتب را... احسان من نیدم داره توی یه روایتی که اصحابه بکید آمندش که تحلقه لحیطه تحلقه داره بهش مزمت میکنی شبه این کاری میکنی اما یه خب خلیه یه سره من ندیدم من لاقل ندیدم هفت و شوارب داریم لقص میکنی باز یک مادنی دیگه داریم که شبیه اونه کار رو باید توضیح میدم هفت فتل و وجیه ها هم داریم هفت فتل مرعت و که ما الان در زبان و فارسی چی میگیم این صورت چی بند بندنداختن این بند بندنداختن زند صورتش که بعد هم موها رو میبره اون نرممونی که باید تو سویت زنها قیدا میشه با بندن داختن میبره مثلا به دیوز بود من برای از دیوز گفته ما پاک اشتباه قرار ما کلنه هفت رو تو لحیه نداریم تو شارب داریم هفت فتر و برجه ها داریم اما هفت لحیه نداریم اونی که الان داریده باید مشکله اینه که در این حسن زهید نیوقدر حفظه لحیثه به امان واقعی نصفت رو که اگر حفظه رو به معنای مثل بندن داختنه بران صورت زنها بشی یعنی امام باقا به کاملا صاف کرده دیگه مثل این مثلا با این ماشین های سطحه باشی کاملا مثل اینکه که زن سورتی که بندنیده شهر سورتی صاف میکنه از ایمان برسر از ایمان برسر دقیق بکنید مراد من از کنم بتونی یک جای حرف دیدم نه حرف دم. مفاد حرف داردن این که ماده حرف توی اون نسخهی شهر من نگاه کنم نبود نه, نه مراد من از تا ترجم شد تو من تقریب من دوشتور کردم مراد من واضح نبود مراد من این مخواستم بگم که ما یک روایت داریم راجع به امنه که مفاد حرف داره مفادش مفاد حرفه اونم منحطه نبید روایت حرف ذریعاته و این روابط اصلا حسن زیا هیچ شاهدی ما نداره، جزء روابط باشه. چون در بحثه هم غالبا سنی بودن، شاید مثلا شیعیان موالی بوده. اونام که میگه به و صاحبوندیه که اونها هم یارا مثلا اهل سنت بوده که میگه لذا من شک کردم چون سر امامت این کارا رو داره میکنه. شواهد چه میبینی؟ نگفت که شیعه شیعه باشه. و طبق فکر من اینه که احتمالاً اولین کسیه که ثبت کرده باشه مروان عبدالله بن مصحان بوده. از ایشان به اصحاب ما ترویج شده باشه. صاد عبدالله موسوی گزارش ها به اجماع یعنی به عبارت دیگر ما احتمالاً تاریخ این واسطه این جور میدونیم یک شخص بساطی که خیلی آشنه از خودش خدمت ایمان باقر رسیده و صاحب شناسی خدمت امام باقر علیه السلام و بعضی اشخاص رو نقد عبدالله موسوی سخت کرده از سخت او به امام علیه السلام ممکن هم سخت کرده ها ما هم خب عرض این تاریخ نقلش شده و بگم ترجمه کنم من حواستم همجوریه میگم از واخطله شو خود من یه شبه دیگه هم دارم علاوه بر اینکه اعتراض شیخ کلینی کسی برده، برده، کسی نیه ورزه از سر مرحوم صدوق که چه دیگه نمی از این جهتش یک شبهی که همیشه عرض کردن این فراموش نشه در مشایخ احمد بردی یعنی برقیه پسر یک عده از علمای کوفه دیده میشن که شواهد نشون نمیدن به قول عامه از کوفیا به حالا برگشتن اما اینکه که کسانی باشن کسانی هستن که شواله رو خوب نمیدونن بابا ما یکی جان عبدالله بن مسخره شواله که من میدونم احمد بن بردی به کوفه نرفته از, از این چیزی یاد یعنی باز چی داره من با اهلین خودم درخه عجز گفتم میگم این قوامنی باز می اون کوفه رفته اگر احمد بن بردی کوفه رفته خیلی کم تحمل حدیث کرده خیلی کم چون احمد اش اگه کهن کوفه رفته از بزرگان حدیث تعامل کرده یکی از منابع مهم قومی ها نسبت به آثار کوفه احمد عشق است. اینکه از منابع مهم کنه. <تصفيق> یعنی کوفه قوم این مرحله قوم بیشتر مرحله تحریح و تسریح و تنظیح و نقل روایاته. تولید میراث علمی ما در کوفه است. تولید میراث در کوفه است. این رو ما همیشه گفتیم این نقل انتقال ها رو کاملا به دقت بکنیم. احمد اشعری قطعا جزه که از نقاط بسیار مهمه اتصال نقل تراس کوفه به این مسلم یعنی هیچ و از بزرگان هم نحرک کرده و زیاد هم نحرک کرده و کتاب های خوبی هم نحرک کرده از ورشان نحرک از ابن فرزان فدر دیگه بخواب که که لیست طولانی از حسن محبوب نحرک زیاده اما احمد برقی به نظر اما سابق نیست داری ما شانا زیاد هم ن که احمد برقی از اشخاصی کوفه نورد که هیچ شاهدی نیست که اینجا به قوم آمده. من همین خودش این شاهدی که رفت کوفه. کاریش یا شاهد که کیشون کوفه رفته یا به نهر وجاده یا ان شده. پدرش مال کوفه است. پدر ایشان مال کوفه است که آمده یکی از مصادر نسبتاً مهم نقل تراس کوفه محو محمدی به خاطر دارید؟ پدر اشتباه نش بقیه پدر مال کوفه است. میراس ها رو قم عورده این مسلمه بوده؟ احتمال این که انعبیه هم ساقس روزه از این ها برقی زیاده دیگه بعضی مثال کمی نیست. چون الان هم منسردن فقط کلینی عورده بیگه از کلینی هم چیزی نه عورده بخی این که این نقل مختصری که آورده بعد هفت به توی یک نقل مختصر بعد از 20 طفل نقل مختصر آورده قده هفت طفل لحی یعنی همونت هم باز برای ما روشن نیست که اون مفنه اصلی عبدالله میموشکان حفظه لحیته بوده یا حفظه لحیته بوده اون هم برای ما روشنی ما مثلی مثلا مثل دست دو روحه به اصطلاح آیه طولیه از این رواده در دل ها مکارمون اخلاق محوم تبرسی هم آمده نوشه انال حسن زیاد میگه حضرت عبا جعفر بودی این که چاپ شده که من دارم قد اینجا خففه دارد این هم برای ما دیگه بطرعا نیست که خففه یه خففه باشه با همون عفت میخوره خففه باشه با همون عفت میخوره خففه باشه با هر با مناسب تره به نصورت میساید چون انا تو زمان ما خباقی که سینگنگو گفتن خب خیلی مخترعش میخواد بنده <تصفح> میشه دفو این کلامی هست که مثلا امام باقر بند مداخته. این حصه رو اگر به ذهن بزنیم بزن مفهمش میشه که خب واقعا خیلی... اینطورم که من خبر دارم این روایت منحصربفردی لازم به حفظ امریته نه در روایات شما در خصوص اهل سنت هم. مثلا فرضتون بگی عبداللهمان سال یعقوب گفته مثلا عبداللهمان عبدالرحمن وارد تا یک قبضه نیستش داره برای قبضه می‌گیره یک خطو مری و در عوض یه یک خطو یه یک خطو مال یاد نکند ولی اما چون مصادر اهل سنت هم حرفی نگفته نه اون مشکل کار اینه این یک مسئله این متن الان دیب به لحاظ سنتی جیر داره به لحاظ بنظر مای ما اشکالی گیر داره که اون احتمال رجاذه درش هست ایشون کتاب عبدالله موسکانو دیده خودش به خدمت عبدالله مسکان نرسیده به اصطلاح. یک شبهه دیگه هم در این هم در فیش ما وجود داره. برخی از اصمانه بنیسا نره. چون اصمانه بنیسا مهل کوفه هست. مورد هم عبدالله نموسکان چون احمد از محمد خالد برقی از خالد برگی از عثمان بنیسا هم عبدالله نموسکان. اینجا قلعا یک گیری به نظر من داره. این روشن نیست. اما عثمان نیسانت و عبداللهم مصخان گیر نداره. اعداد روزگار هردا شانش تو محفوظه. مشکل خاصی نداره. اینجا کیم گیر داره. در آقا؟ چون معنی صحت نسخه دیگه. این دو تا هیچ چیز هست. البته ما همیشه تحلیل های مغزی خودمون رو انجام میدیم. اما گاهی واقعا ما تو رو گیر می کنیم. لذا احتمال داره یک قسمت های لغت رو نشیم با قواعدی که ما الان فکر رو کنیم روز شاید سماع باشه در کتاب لسان لحرم در ماده هفه اینجور می روشه هفه لحیت هو افردن ما خیلی عجیبه رو در میشه زدید. ح رو که دروی از گسه خره میکن. بردار حد فتل م و تو ها ای توی و شهر هم به موسا موسا موسی می تی مز دوبتش برلا داره به خیتن یعنی بند بندنداه. حالا این کیویوری میشی من این ماطول لغت داریم که یک لغت ماده واحد یکی از دراق لغت اه که خیلی جااش تمامی کرده داره هم اگر این راست باشه چون من واقعا، خیلی خودم شک کردم که اول نه وقت گوی امامون مشکی خیلی شک کردم اگر این راست باشه این معنیش همایه سر بودی یا ما خیلی عجیبیه این دلیلشون عرب آمده نشده هر سلیقه ای آخره نیامد یعنی کوتاهه هر بسیار مرد و جاه یعنی شیر در البته یک احتمال داره که شاید مثلا یه ارتکازات و قرفی دخیل باشه چون معروف تیر زدن به صورت موها رو خرخش میگونه اصلا زن رو این جد تیر میزه که تیر شون ببیشتر بیشتر مویی صورتی شون کم بشه شاید امزن با مثلا نخ میزننی که حالت بعضش هم حالت نقصه یعنی فقط حق نیست مثلا ممکن مو در بیاره پیازش در بیاره حالا احتمال داره توی ارتکاز عربی با اون واقع خارجی با هم دیگه فرق بخونه من نمیدونم البته علایه ها اون چی که الان در تفاق دستانول عرب آمانه اینجوره حفظ نهیته رو به معنی کوتاه کردن گرفته. خیلی حقیل بعد اینگه حفظ مرعز و ها این توضییل و شهره ها به موسا موسنه تیر بزنه تیر برسنه برسنه. بعد اننظرره که سی وشراب به خ ب ب انداخن نه که رو ن بند, بند, بند میند. اون هم که من علمان شینزن شیننم تازه شده اما مطارم شن که کانات تیغ نمیزنند به حال ایمن که موی صورت رو بیشتر تر میکنه به جای اینکه ازول بداره لذا برای همین بند میزنن که این بند رزش میکنه. حالا این چطورش رو توول از عربیه ماده وارده حرف داه. توی مرد ها به کاربردهید یک جوره توی خانوم ها به کار بود بشه دیگه میده اگر این مصدبه چون در کتاب لغت دیگه نقلم کرده کتاب لسانال عرب من کمتر حس کردم که خودش نظر داشته باشه خود صاحب کتاب ظاهرش همش جمع کرده آراء دیگه همه کتاب لسانال عرب ترتیبش اینجوریه مثل بقیه کتاب لغت نیست حس نکردم خودش نظر بده یا خودش یک معنای داشته بکنه از مسادر معین مثلا نقع اسم بوده درداشم از مسادر دیگری باشه ظاهرش حالت لسان عرب اینجوریه حالت ندارم کرده اسم رو به قال پلانه اون صبح نگاه کردم اسمش تو زهرم نیست در از اگر این مطلب درست باشه بله این منظور بله اگر این مطلب درست باشه ممکن است بگیم در لغت عربی یک حرف فلحیت بوده یک قبل حق نسبت به من نهایت اینه چون حفظ به معنای روس رسیدن به کران هست حفظه اینجور معنا بکنید مقدار رویش رو کوتاه بکنه که پوست بشه دیگه بشه یعنی بالاخره باز به اسلامو ما ماشین بکنه اگر حفظ اگر این مطلب من میخوام توضیح مطلب رو بدن ما باز این بین حفظه و حلقه بالاخره فرق بکنه حلقه از بیغ زدنه با تیر زدنه اما حفظه ولو خیلی کوتاه بکنه که بشره کاملا دیده بشه چون احتمالا اون معنی اصلی رو باید حیث بکنیم وصل الالحافظ وصل الالحافظ یعنی تا به ساحل رسید تا به کرانه رسید دقیق کردیم احتمال میدهدیم که گفته حفظه لحیته ای اخوه منها مجرد مطلبه اخ نباشه من منها به مقداری که درسته به مون علایه حاله روایت ضعیف و سنده یک از سیره ایمان با غیر نشده قطعا دو اصلا این شخص به نظره تشریعشم روشن نیست اصلا وزرش روشن نیست که یه عادی بوده شاید درست نه درست نه؟ نسخ روایت ما بین هفت و هفت سه احتمالی احتمال این که هفت در باقت عرب در لحیه غیر از هفتهی که در زن هست این هم وارده به همین نقلی که در کتاب لسان و عرب هست انصافاً با این روایت واحدهی که از منخدم داریم کل این نمیشه ما مطلب را عوض بکنیم این راجع به ما از روایات دیروز که متعرض شد باز در روایات اخذ لحیه ما روایاتی که در اخذ لحیه داریم روایاتی که در عنوان غزله شدن به خودیم که دیا رو تحلیل کنه که تمام بشه که برگردیم به بحث به اصطلاح 12 بحث گسترش کردیم ما قدیمی ترین نصی که ما داریم نصی که ما داریم اون دفعه می‌کنی در غز از کتاب به اصطلاح جعفریاته در این کتاب آمده که هر می می‌فهمند از موی سود سود معنی که گوشه از این کوتاه بکنی. آرز، آرز این موهای وسط صورت. از این هم کوتاه بکنی. و ما و و ما من مقدمه ها. قرظه اولین بار اینجا اومده در روایات ما. از جلو یعنی ده این چند تا مقدار قرظه تجوزو، جذر یعنی بریده این روایت ما. روشن در روایات اهل سنت کلمه قبضه اولین بار تو عبدالله ابن عمر آمده. قبل از اون من نیندم. به پیغمبرم نسبت داده نشده. مسئله قبضه هم. بردها قطعا مفرح شد. یه فرصه تو فرصه آمده. تو روایات بعد ما هم آمده. یه بادی هم مرهوم صاحب سائل و همین حلم هم با استحباب و قصد ما زاده هم قبضته منندهیه. اول که باز هم از منطردات کلینیست محمد بن یعقوب ان علی بن ابراهیم ان عبی خب اشخال نداره ان ابن عبی اومد از سر زواجی که سرهای ابن عبی اومد باشه ان محمد بن عبی حمزه این پسر ابو حمزه سومالی معروفه ابو حمزه سابد دار ابو حمزه اسمش محمد بن عبی حمزه است از سره است امن اخبرهو معین نکرده ان عبی عبدالله این دهت معروفی داره که اگر ارسال در روایتی بود اما ابن ابي عمر ارسال نکرده بود آیا بنابراین که اینکه مراسید ابن ابي عمر حجت باشه اونم حجت هست این بحثی مفصل داره موانی چیزا رو اونجاش هم گیر نیست منم نه حال این بحثی دارم و خیلی تحقیق گذاره فعلا در اینجا ارسال از ابن ابي عمر نیست ارسال از محمد بن ابي حمزه است پسرعبو حمزه ایشان ارسال کرده این بحثی که ما لحظه ها به مراسیل ابن نبی اومیر یعنی دوزه مراسیل ابن نبی اومیر و که نه این و اما یه توضیحات از کاری آنچون داره اسمش بردم این چون اصطلاحی این که مراسیل این آقا حجت هست یا کلا این اصلش از اهل سنت است. بحث مراسی از اهل سنت اصلا برن اول مفرح شده مخصوصا اینکه از تابعین که خیلی مشهوره که اسمش رو زیاد حسن بصری چون این مرسل زیاد داره یکی از بنسای چون مثلا علی بن حسنه بصریه چون مرسل زیاد داره و ایشون صاحب درس نکرده بزرگان صاحب نکرد. رو اما تو آدم عجیبی قوی بوده زوارث مثلا الان روایت‌ها کرده مثلا بصری از علی مهم هست من قرائت قرائت از علی زدت نکرده یعنی درس روایتی نکرده بعضی بزرغن یکی که نارگیل نزدم، یکی اون اونگو کنم بعد تمیم کنم هر مش برو، هر مش رأس آسیب. ایا آخریه؟ من دیگه حالا وارون بحث نشدم که واسه توضیح وقت این یکی از مایزهای اساسی بین مذکره هنفی، اما نه همه احنا و مذکره شواییم که اهل استد نه هیچ بحث مفصلی. چون احنا مرسل عمل خودناور هنیه در این سریع در واقع سوال خیلی اساسیه تعارف اینها، اونا حدیث مفصل. ابو حنیفه بونا عمل کرده شافعی مصل رو که عمل مصل نمیشه کرد. اصلا گفتی کنه اولی کسی که بحث حدیث مصل رو مطرح که شافعیه دقیق میکنه و مصل در اونجا دیدگاه رجالی داره یعنی مثلا یک حسن برسیه این برز صحابه ان رسوله این میشه اسم دیدگاه رجالیه اصحابه ما کامل کنه گفتن مراقید نبی با همین دیدگاه رجالی نگاه کرده نتیجه اگر خود ابن عبی عمر ارسال بخونه دیگه می قبول کسی دیگه ارسال بخونه ما ما از کلم احتمال داره مراسیل ابن عبی عمر دیدگاه خهدستی باشه نه رجالی این داره اولین باشیم از دست دستم آقای از, از این دابی طولانی یا نیم بخونم بازیسیم فقط اشاره میکنم که گفت فرم فرم و تعمل. فهرستی یعنی چی <ص swatPC> یعنی از خصائص کتاب ابن ابي نه نه مشایخ ابن ابي عمره از عبارت نجاشی اینجور کتابهاش کرد خواهر یا جلو دختره، چون گیر زندان کردن برای اینکه شیعه رو رهنمای بساز جاسوسی کنه اسم شیعه داره که هم شلاق خورد 121 شلاق هم خودش مصادره کردن زندانش کرده خواهرش مادرش کتابارو زیر زمین دفن درآورده شده یا باران یا خرابی زیادتی از این ساید نبید. اگر نقطه این باشه ممکن است که این هر جاشته باشه فرمان بکنه بیه اون خواه که عقل و شعور نداشت که انسال بخوره به مشاوره نریوم اون انسال این خطرهای آب کنید نسید یا دوی اصال نریوم واقع بشه احتمال داره عبارت نجاشی در مرکب خبت من ارزام احتمال. این که آرمو میگن مراسیل زریونای قبول کردین همونه که خودش ارسال کرده بوده اندر نه مثل اینجا که گفته محمد نبی امزه ان بعد اصحاب اما ان این نه اینا نه اینا طور ارسال نبی حمزه نه, اون نقصی نه ارسال اون نوقیه اساسی اینا روشه در اون نوقیه اساسی نه اون بحث مراسیل مال سنیا و رجالی بود اینی که از اونجای که ما رفتیم دنبال سنیا اون مراسیل احل سنت رجالی بود چون حسن بستی از کلان هم رسول الله این رجالیه کتاب احسن بستی مطلق ماده احتمالا مراسیل ابن عبی اومد خوب دقیق بکنی این مراسیل ابن عبی اومد فهرستی باشه نه رجالی فهرستی یعنی یعنی تو کتب ابن عبی اومد نه من ارسل انهای ابن عبی اومد باشه تو کنم؟ اگر در کتاب های ابن عبی آمه حدیث مرسل بود قابل قبوله از عباد نجاشی ما تحلیفه من همیشه عرض کردن که خیلی از مباهز ظاهرش ما با اهل سفرد اما تحلیف بشه ما یه چیز گفتیم اوناسیم دیگری گفته یکیشم هم اینه و تمرش در کجاست؟ خب گفتیم این تمرش اینه که شیخ گفته به مراسیل صفوان و بزنکی و ابن عبی آمه میشه لفت کردیم نه جا چیم اون قصه کتاب ها رو نرشو. نه این نتیجه بگیریم در صفوان و زنسی خودشون یعنی رجالی معنی بکنیم توی این نریامر مرسل ما ما رو خودش که مرسلی فهرسی معنی شد نقطه فنی سعی که سرکم مختصر بگی؟ چون کلام شیخ رجالیه میگه کان لا یرسلون و لا یربون الا انسقه این رجالیه این لا یرسلون و لا یربون و لا انسقه در ستا گفته سه نریومه صفوان بزندی روشن شده خود دیگه این ستاره رو شیخ رجالی گفته اما مثل رو که نجاشی گفته که که تاقهاش زیر زنی بردن, دو بردن. در خصوص نریومه گفته در صفوان رو بزنده نمیده اینا ما بیاییم در صحوان و بزنکی رجالی بگیریم مثل اهل سنت تو ابن عبی عمر به خصوص سهرسی می‌گیری خاصه که این حدیث معتبر میشه خاصه اینکه چون داره ابن عبی عمر. ان محمد بن ابي حمزه ان بعض عمر ابی عبد الله ان اخبرهم معلومه که نیست در هر روشن شد، خاطر روشن شد، پس ما اگر یکی بیایم فهمیم خصوص ابن عبی با خاطر عبارات نجاشی بشو رسید. پس در روايات ابن ابي ارسال هر جا که بود مضر نیست، که خودش بعدیش و ما داریم که ما نداریم خصوصی نداره، ما روايات نشریان زیاد داریم که ابن ابي عمر ان اصل من روا عن ما ابن عبی از چهل بی هم داریم این انسوحیان ابن سینا امام امر اخلا یا به عكس امام امر اخلا انسوحیان ابن سینا نبی عبد الله كل ما ظاهره در صلاتش او نقص و فيه که سفیه سجداش این رو تو معروف سر یک فرد رنگ ترجیح می خود سوحیان ابن سنت هم در رجب روشن ناله تقریبا روایت مرویز و این قاضی کلان از هم دیگه توضیحی توضیح هست در طولانی داره مقدار نیست یک میگه هم من اخبر قانع نبی عبدالله قال مازا به القبضه فسنه بعد داره یعنی الیه این یعنی الیه شبه مال کلیهی باشه احتمال داره مال خلیجی باشه یا احتمال در مال خود که میزونی تفسیر از کیه این هم من یک توضیه هاستی سابقاً از کرد یعنی این باب بازکان خیلی پولانی میکنم که نوزش که اون داره چه وقتی گه که این توضیه حدیث مرادی میشه مردوم کلینی باب 65 از هم الحمد آداب الحمام انر ان حسین بن محمد استاد ایشان از اشائره سیال بزرگوار حسین محمد فقیت می دارند ان معللم محمد این معللم محمد توصیف از تذکیه الوعی هم داره از کلام چرا معللم محمد به مواردی است که مبنای استاد مصالحو اثر کرد چون معللم محمد ثابتان خود استاد حسین میشدن بعد به خاطر کامل زیات حسین اشتره معللم محمد بعض هم که از کامل زیار برگشتن دیگه افتاد این چون بعضی سال از ما بعضی اسما هستن بعضی افراد هستن که برای از پر تراجع مرموم و استاد عوض شدن یکیش معلم محمدی. این معلم محمد منحسرن به کامل زیار پیش استاد بعد از این که ایشون طبق نامهی که نوشتن به تاریخ ازاد راستن که متن برقهی نوشتن نه نامه که از مبعوثون در کامو زل برگشتن 1613 ه.ق ایشان اگر این تاریخی که در ورده هست با ثابیت رجوع شکی یکی باشه چهار سال قبل از وفاتشون اگر بگیم نه بعد نمیشه گفت سال 4 سال قبل از وفاتشون ایشون برگشتن از این مردان یکی از موادی که تظاهر ثمره ماو بین دوستا مبنا اینه ایشون حدود 25 6 سال راه این بود مثلا 30 سال 25 6 سال راه این بود که معلم محمد سقه است و خاطر اوگوش در کانوزی داد بعد برگشتند به همون اول که معلم محمد توصیح نداره چون از کانوزی رف... رفیت یاد صحیح هم همینه معلم محمد توصیح داره توضیح هم داره کلام جاش اینجانیست. و البته این معلم محمد از علمای بسراوی ماست یعنی این از میراست هستی به بصره میره از حسین محمد اشعری از بصره بود. و ان علی ابن محمد که استاده ایشانه کنه اینی دوم ان صالح ابن عوی حماد این هم تذیب شده این هم این چه حد قلوب و جوری آلد. با قول فضلین شده میگه کان را تول انسان احمد بوده ان صالح ابن عوی حماد راضی این دو نفر راضی اصلا تیرانی هستن که فضل دوشون رو چیز میکنه یعنی آهان شاگی سهل ابن زیاد اگه صالح ابن عوی حماد عمل وشا مصدر اصلی کتاب قشاشه که در کوفه بود. انا احمد ابن عاص از ثقات ان ابي خديجه که بحث معروفی ظاهرا اول جزء خطابی ها بوده بعد برگشته. اصلا در قيام مصلاهان ابو خطاب شرکت پیدا توضیح دادن ما با 700 نفر وابسته به قيام مصلاهان گفتن که همشون همو هم در کوچه شوسهات مشغول نبودن. همون دم در مسئله همشون کوچه بودن. به استثناي ابو خدیجه که مجبور بود، شادن کوچه ازو دشتم، شب خودشه نجات داد. سالم و اما این معلوم خونهیست معلوم خونهیست هم کوفی که اواخر احناسش در مدینه بوده احتمالا این ماده قبل سفر مدینه شد این عبی عبدالله علیه السلام میراثش میراث کوفیه از وشا بعد همه کوفیه وقت توسط مثلا معلوم محمد یا توسط سالم نریحماد رسیده به خون این دوتا هر دوتا اشکال داره. هر رو خالی از اشکال میسن اما تو معلم محمد بسترابی ترسی چاگه دیشان به برو رسیده بلا معلم نمونم معلم نمونم این تو نجاشی میگه زهیل کن فلحد زهیل کن خیلی زهی زهی باشون کنه شاید به این درجه از درمی که نجاشی گفته نباشه اما بله روشن نیست ظاهرا جز خط قلوب که هست اما لاقل خط قلوب به سیاسی و احایدی احایدش هم بعضی احادیث هم که به شمال نوروز حدیث تفسیر نوروز رو به این حساب زعماعلل نمیشه آدم چین صاف نیست خیلی کمی. اما احادیث صاف هم داره خیلی تمیز و مرتب و محنن لفظا عملا خیلی احادیث خوبی داره. این یک شرح خیلی طولانی داره. خود ما هم در این درسو شرح پنجشنبه شد مفصل چندین در صحبت که ابهام های زیادی هم داره. دیگه ما از بحث خیلی طول چند درس می خواد. مازاد ما هو احتمالی که من میدم حدیث اول با این دوگم یکیه اون هم من اخبرنام معلم نخونه ایده. حدیث اول و دوگم یکیه او یک نقطه که گفتن طول میتیش شهرمزن فقط اشاره می‌کنم. ما چرارن عرض کردیم احتمالاً این خرابی هایی که اون رو نبی اومد خورده این طول رو همیشه به صندت بخورد رو خورده شما آب و خاک که دیگه عمل و شغل نداره به سند بخوره احتمال میدیم روایت این بوده مازاد من اللحی عنال قرزه و فنار این لحیش که مرد بوده اینم شده هم سند خراب شده هم مرد حرام شده وقت این طور شده. مازاد عنال قرزه و فننار این یعن لحیه که اضافه کرده این کد را احیا که برای فیشیش بوده خاطر می‌ذن این مقدار بودن که فاکس شده خراب شده، احیا همون مقدار موجود نرفت که یعنی لری تفسیره که مخلوق در عینا و احیا هم کرده جدا اوردیه و درست هست این تفسیر تفسیر درستیه به نظر من رواه معلب نخوندیه این کتاب هیومبر هم سردهش آسیب دیده هم متنش درد دیده. تندش که دیده هم من اخوره هم متنش هم منالله یه حرکت شده آم رو ریخ ده. این اجمال وقتی هم خیلی این خیلی افواب داره خیلی نقاط زرایی زیاده دارید این در حدیثشناتیه ما خیلی معثره که انشاءاله وقتی یه ارز میکنم خدمتون که الان یه جا شدید و سالاللہ محمد و آلالت خبی هم جا شدیم من سمی که در مستقی یہ حالا این طور شده معروف شده یه مصیبت کاپی بازی نکنه یه مصیبت دیگه معروف شد تو بازی به کاپ بازی اینا دیکھیں پر خطر نہ بشو ہفتہ لے ماده ہوفتہ معاذ اللہ تو ما حق المؤمن علی المؤمن قال چه دوره تخم نبی عثمان ما باید معلومه اینه باز بود دیگه داره خیلی کولانی هستم بخوام شهر بدم اصلا نه خیلی نشد جمع کردن این داریم ماسه تلویزیون جمع کرده